الله درك لم تأنس بدنيانا ولم تسر خلف قيث السيف خدانا ولم تعفر جبين العز مبتذلا تستمطر الثل إصعا وإذعنا إسم الله الرحمن الرحيم أي أنك نامت بهتر صرعاز بينامتنا مكئكنا باز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 و سرنوشت نمودید درود و سلام بر رسول گرامی ما حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیه و سلم انکی بشریت را از تاریکی های کفر و شرک بود پرستی بروشنی دین مقدس اسلام راهنمون فرمود برادران مهاجر و مجاهد السلام علیکم و رحمت الله و براکتو با 28 تومین برنامه هفته واری زبانی دری خوش آمدید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 در بخش مروارد هفته، موضوع منتخب ما آداب صحبت و گفتگو و همین طور تحبولات یک هفته سلسله اندرسها جوان ره طاعت امروز گیر که فردا جوانی نیاید زی پیر شخصم به چشم عالمیان خوب منظر است و از خبز باطنم سری خجلت فی گنده پیش قاووس را به و نگاره که هست خلق تحسین کنند او خجیل از زشتی پایخش، حمای بر سری مرغان از آن شرف دارد که استخوان خورد و طائره نیا است. هر موسفید را آن گفت دل سفید تشخیص صبح در شب مهتاب مشکل است گرد زخوی من آید ناسزاوار تو خوی نیک خود از دست مگذار در این غفلت سرا آینه اشکی یتیمانیم که هر جا بینوایی سوخت دودش سرکشید اینجا گویان سنگ لعل شود اندر مقام صبر آره شود ولیک بخونی جگر شود آنکه او در راحت و تنعم زیست او چی داند که حالی گرس نچیست، حالی درماندگان کسی داند که با حال خیش درماند. پیسری نوح بابدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد، سگ اصحاب کهف روز چند پین گرفت و مردم شد. دشمن چوبینی ناتوان لاف از بروت خود مزن، مغزیز در هر استخان، مردی است در هر پیرهند تواضع های دشمن مکر سیادی بود به دل که خم خم رفتن صياد بحر قتل مرغان است نگه دار, نگه دار فرصت که عالم دمی است دمی پیش دانا از عالم است چو طفلان درون دارد از حیر پاک چه مشت زرش پیش همت چو خاک اگر پادشاه است و گر پی ندوز چو خفتند گردد شبیه هر دو روز این بود اندرزه های امروزی که به شعر تحییه گردیده بود خداكنت كي مورد استفاداي شما قرار گرفته باشد ولم تسر خلف السيف خدلانا ولم جبين لم ولم تسر خلف كيف السيف خدلانا ولم تعفر جبين العز مبتدلا فاستمطر الذل اصغاء شهدای <تبخش دلص librame> <ناس> این هفته در جریان هفته گذشته روزی دوشنبه و تاریخ چهارمی ماه مبارک رمزان در نتیجه عملیات شبانه نیروهای خبیسی ناتو، در ولسوالی چهاردرهی ولایت کنداز تن از برادران ما هر یک خادم که مسئول نظامی از سوی حرکت اسلامی ازبکستان، در ولایتی مذکور و یک همکاری وی به اسم هارون به شهادت رسیدند این دو شهید چند ماه قبل به خاطر انجام فعالیت‌های جهادی از سوی مسئولین به ولایت کندوز فرستاده شدند و مدتی چند در آنجا دست به فعالیت‌های جهادی زدند در این مدت در نتیجه چندین عملیات ایشان ده از مرتدین داخلی کشته و چندین عرا در حکومت تخریب گردید از الله متعال تمنا دارند شهادتی شهادت این برادران ما را به درگاه خود قبول فرماید و بیاید به یک ترانه ای که برادر شهید ما هارون سروده است گوش فرادهم نل مکن مادر نل مکن مادر در مرگ خون بارم در مرگ خون بارم Bishnau zimandiger Аzme safarudarem, asmi safarudarem, daram lemme kun madar, no lemme kun madar, dharma ghi kun baram, dharma giunbaram. بیشنوزی من دیگر عزم سفر دارم عزم سفر دارم گرکوش دگر دیدی گرکوش دگر دیدی دی در جبه مادر Dar on Bahrama Kunzari, maadar Vahra kun zari Vahra me zän kun zari maadar Näämə -ma kun madər Dəmər gi xn barm Dərmə zimandigar xn bar, bar Bişnazimən Azmi Maguahdi اكبر مغوع عهدي يجوني يس يا خندام شاهدت زين اطال كان برضه اربابان امروز بر تو جهاد مسلحانه فرض عین است همان گونه که دیگر عبادت ها بر تو فرض عین است زیرا با ختال قتال ارحلی که پیشکش می شود یا ناشی از نفاق است و یا جبن و بزدلی و یکی از لازمه های لای انفقی قتال شهادت است. زیرا هستن کسانی که در این نبرد حق و باطل کشته می اما ای برادرم اینها ها شهده در رای خدا. کشتگان عزیز و ارجمند. کشتگان گرامی و پاکیزه. آنانی که در رای خدا و قتل می مردگان نیستند آنها زندگانند و شایسته نیست آنها را مردگان ننم آنها کسانیند که در رای خدا و قتل می رسند در رای خدا مگو عهدی جوانی یا اینکه آزادگان در این بستره خاکی در سایه های قرآن زندگی کنیم و یا اینکه عزیزان از این بستره خاکی به سوی سایه های نعمت های فروردگار ما در بهشت برین بشتابند. این اقبال خوش این جهاد و دران شهادت نهفته است و زندگی برای شهدا است. تي الحمد لله رب العالمين والسلام على قائد المجاهدين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون, ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن Buman għawfa bi' ahdihi minalla, festabi xiru bi' vei' kumulledi' ba' jatun bi' vada' likahua' l-fawzu' l-aavim. Birra daran, iġraħal gerani salibi, birrahvarie' amrika, inħuttajie slamira daran. Ban izami fuxali, bafartsudajira dar kaburi iġraali nask karda'an. و گران جهت گسترش دایره نفوز نظام مرتد و مزدور کابل بزل مساعی می نماین. تا نظام را از این تنگنا و فراخنای نقل دهند و پروژه های استقباری خیش را در این سرزمین و تحقق برسانند. بزرگترین مانه که فعالیت‌های های شان را فلج می نماید و از دایره نفوذ نظام فاسد و مرتد کابل روزانه می کاهد، امانا جهاد مسلحانه است. اطال در رای خدا، این یگانه هر بیس دشمنان اسلام را در این دیار قل و قم می نماید و نقشه های شومشان را نقش براب می کند. دشمنان با توسل به هر وسیله می خواهند، ذهنت جهادی را در از هان ملت مسلمان ما مخشوش سازند، اما نمی شود که حق را پوشانید و آن را در بستره زمان خفه نمود. جهاد مسلحانه دایره دا اش پهنتر میگردد و فرزندان صلاح شور اسلام جبهات قتال و رویارویی مسلحانه را داوطر مینمایند زیرا آنها با الهام از قرآن و سنت قتال را ضرورت حتمی و عینی میدانند اشغال دیار اسلامی نجاست است که بجز جنگ و قتال نمیتوان آن را زدود برادران فقهای اسلام بر این اتفاق دارن که اگر کشور از دیار اسلام با اشغال کافران در میآید، جهاد بر سرنشینان آن فرز این می گردد. و اگر آنها، یعنی سرنشینان آن کشور، از جنگ با آنها آجز بودن، دایره فرزیت پهندتر می گردد، تا این که همه امت اسلامی را شامل می گردد. برادران، فقها بر این نیست اتفاق دارن که این قتال را جنگ و جهاد دفع امینامند. و آن راز واجب ترین و جایب بر از ایمان به خدا و رسولش صلی الله علیه و سلم و روز آخرت می دانند این از فیصله اسلام در افغانستان و سایر کشورهای اجغال شده ای اسلامی قتال تا برداشتن بساط اجغال و اقامه نظام اسلامی و این یک وجیبه اینی است که نمی توان از آن فرار کرد و عبادت نفلی نیست که در انجام دادن آن بنده را اختیار است آره برادرم، امروز بر تو جهاد مسلحانه فرض عین است، همان گونه که دیگر ها بر تو فرض عین است، و در برپاییان نمی توانی تو فرروی، و یا بحانه را بتراشی، امروز آتشی را کشغالگران صفاق، و بی آزرم اسلام در کشورت آن و شوله های آن را هزار جا توانی بینگری، بر توست که جهت خاموش ساختن آن کمر حمد ببندی، و با شجاعت و رادمردی، و میدان کارزار داخل شوی، و با سلیبی های کافر و جیران مرترشان پنج هرم و با جز رب آسمان ها و زمین از کسی دیگر خوف نداشته باشی، و با جز بر او به کسی دیگر توکل ننمایی زیرا او تو را است و با یا سرایه های کسانی که سازش، ذلت و فرومایگی را تحت انوان به بنام دیگری می کنند گوش فرا ندیهی، زیرا بجس قتال هر حلی که پیشکش می شود یا ناشی از نفاق, نفاق است و یا جبن, جبن, و جبن و بزدلی و این دو چیزی است برادران که فرهنگ مومنان را مرد و مجاهد با آن آشنا نیست برادران شاید سوال کنی, سوال کنی که احتمال کشته شدن در قتال و جهاد مسلحانه بعید نیست آره،, آره،, آره اما آیا میدانی کسی که در راه خداوند کشته می شود او را چه اجر و پاداشی است Darrahi bar Chidani Basati Ijgal, wa Fasadi for Umayagan, Wabar Paihila Fat Islami, Wa ehta Zazdara Wardani Darafsila ilaha wa Muhammad al پس ای برادرم بر از این مقدمه مختصر اندکی صبر کن و با من گوش فرادی تا از شهادت در رای خدا و مقام والای شهید و منازل آلیه شهدا در برین و جایگاه و کشته شدگان در رای خدا با تو صحبت کنم. شاید این سخن من و تو و سایران را تشویق نماید تا از این تنگنای زندان خیشتن را برهانیم و جهت نبرد علی دشمنان سلیبی آماده شویم. و دلیرمندانه وارد میدانهای کارزار شویم و با شمشیر برران بر فرق کین توزان به کوبیدن بگیریم و جز آسمان بجای دیگر خیره نشویم یا این که آزادگان در این بستره خاکی در سایه های قرآن زندگی کنیم و یا این که عزیزان از این بستره خاکی به سوی سایه های نعمت های پروردگار ما در بهشت برین بشتابیم برادرم مبارزه مسلحانه برای پیروزی کامل حق بر باطل Tahkuk äädelläni ki, voitain baksidän bafdna o shar, amre mahdum vqa ta'is, vbidoun tawasul baa nimkan residan bhadaf muysar nabuda, vunnem tawan tariq res ra'ker, kham ber sazat, vham Khatarita tsaadum mahdum yano jundulla vajundu shiattin ramuntafi gardanat. Nazeriai adamah tmiat iktilal, iktesawur wahizk, mahrkati intindar bi bunyatra, nfaq, juban vabuzdili, teškil mi و یکی از لازمه های لاینفق قتال شهادت است. زیرا هستند کسانی که در این نبرد حق و باطل کشته می شوند. اما ای برادرم اینها شهداء اند. در رای خدا، کشتگان عزیز و ارجمن، کشتگان گرامی و پاکیزه، پس کسانی که در رای خدا برام افتن، روانهایشان را در کارزار حق قربان می کنن. در حقیقت آنها را قلبهای اس نهایت گران مایا. و روانهای نهایت فرخنده و نفسهای نهایت باکیزه خداون میفرماید فرماید وَلَا تَقُولُ لِمَي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات بل احیاء اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا یعنی کسانی را که در رای خدا کشته شون مرده ما بلکه آنان زنده ولی ولیکن شما نمی فهمید آره، آنان که در رای خدا به قتل می مردگان نیستند، آنها زندگانند، پس شایسته نیست آنها را مردگان نامید، و نباید در شعور ما مردگان به شما رایند، و نمی زیبد که در زبان هنگام نطق به آنها مردگان گفته شود. آنها به گواهی پروردگار زنده اند، پس بایست زنده باشند، آنها در ظاهر چنانچی مشاهده می شود، کشته شدند، همه حقیقت مرگ و زندگی را این ظاهر نگری نماید. بگمان که اولین ویژگی زندگی این است که در آن فعالیت رشد و گسترش باشد، اما نخستین نوژگی، مرک، سلبیات رکود و انقطاع است و آنان که در رای خدا و قتل می رسند، آنها در پیروزی حق که خاطر آن کشته شدند فائلیت از مؤثر و فکری که خاطر آن به قتل رسیدند و در این بستره خاکی در حال, در حال گسترش است. و پس از کشت شدنشان، اثر پذیری دیگران از آنها نیروی آفته و امتداد میابد. پس آنها پیوسته انصور فعال و انگیزه مؤثر در ساختار زندگی و راهنمودی آنن، و این نخستین و زندگی است، و بدین اساس آنها در دنیا انسان‌ها زندگانند. اما آن شهده زندگی ها ان، آنها کسانی ان که در راه خدا با قتل میرسند، آری دنها در راه خدا، دور از هدف وقایت غیر از خدا، در رای دین کان آن را برگزیده است، تنها و تنها در این را، نه در رای دیگری و نه تحت شعار دیگری و نه با شریک نمودن شعار دیگری، پس آنها ان شعدا و آنها را تنها و تنها جهاد در رای خدا، ایمان با او و تصدیق بر رسولان او بیرون می کند. این از جهاد، ودرآن شهادت نهفته است و زندگی برای شهدا است خداوند می‌فرماید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات عِنْدَ رَبِّهِمْ عند فَرِحِينَ يرزقون فرحين اللَّهُ مِنْ الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم خوف عليهم يحزنون یعنی کسان را که در رای خدا کشته شده اند پندارید بلکه آنها در نزد پروردگار خیش زنده اند و روزی داده می شون. و از که خداون آنها را از فضل خود عطا کرده شادانند و به آنانی که در عقیب با آنها نپیوسته اند بشارت می که بر آنها ایش ترس نیست و نه آنها اندوهناک میشوند. شوند بینگر ای برادرم که خداون مومنان را چی تشویق می نماید تاب اوغوش باس و قلب های مالامال و سرشار از ایمان با استقمال شهادت وطن ندادن به زبونی و ذلت آنان مجاهدانه به شهادت برسند بزرگترین پاداش را در بدل این زندگی دنیوی دریافت میکنند خداوند میفرماید ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و بأن لهم الجنه یقاتلون في سبیل الله فیقتلون و وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم يعني خداوان ما الحاوى نفسها امو من رنخل دارين موداً بارين كبئيشان بهشتاست انها در رأي خدا مي جنگاً مي كشن وكشتا مي شوان اين وعداي حقاست كخداوان در توراة إنجيل وقرآن نموداً و کیس وفاک کنند تر به احدش از خداوند، پس ببایی که با آن داد و سطوت کردید، شادمانی کنید، و آن همانا پیروزی بسا بزرگ است. برادرم، به این آیت مبارک خیره شو و اندک در رنگ نما، بنگر این وعده راستین پروردگار توست، که اگر بسوی نبرد بشتابی و در میدان کارزار مخلصانه شمشیر برداری و بی‌باکانه بر دشمن اشغالگر صفاق و اجیران مرتد شورش ببری اگر بیکشی و کشته شوی تو را بهشت است و در آنجا تو را پایندگی و جاودانگی است حالا شمای از احادیث نبوی را به زمزمه می‌گیریم تا از مقام والا و خلوصت شهدا خیش را آگاه سازیم و غبار ذلت و فرومیگی را از خود زدوده و تاج آزادگی را بر سر گذاشته و با جزبندگی رب آسمانها و زمین به همه بندگی ها کفر ورزیم و این اعلان کفر به خدایان ساختگی را در جولانگای قتال به نمایش بگذاریم از حبو حریر رضی الله عنه روایت شده که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود قسم به ذاتی که جانم در دست او است هیچگاه کسی در رای خدا زخمی نمی شود در حالی که خداوند خوبتر می فهمد آن که در رای اوی زخمی می شود و زخمی در روز قیامت در حال حشر می شود که خون جراحتش رنگ خون داشته اما بوی آن بوی است. امام بخاری عضرت انس را دیالان روایت می کند که گفت کاکای من انس ابن نظر در صحنه جنگ بدر نبود و برای پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت من از نخستین جنگی که با کفار نمودید غایب ماندم و اگر خداون من را در جنگ با کفار آذر دارد، خواهد دید چی خواهم کرد؟ وقت روز احد فرا رسید و مسلمانان پراغنده شدن و گفت خدایا از این عمل اینها، یاران وای می نماید در پیشگاهت پیش. از ازر می طلبم و از که آنان, آنان کفار می دارن بیزاری و بعدن پیشروی کرده و در را به سعد بن بر برخورد نموده و گفت ای سعد بوی جنت و رسیدن به سوی خدای نظر را از سوی احد می بینم سعد به پیانبر صلی الله علیه سلم گفت ندانستم بعدن چی کرد انس میگوید گوید خورا در حال یافتم که در جسدش اشتاد و چند ضربه شمشیر نیزه و تیر بود و کسی جز خواهری هو کور از انگشتانش شناخت یک کسی نتوانی سورا بشناست. حنس میگوید که به گمان من این آیه در وای و کسان چون هو از شهدائی نازل گردیده است. من المؤمنین رجال صدق ما اعهد الله علیه. امام بخالی در کتابش از اون محارسه بنت سورا سراقه روایت میدارد که نزد پیانبر صلی الله علیه سلم آمده و گفت ای پیامبر خدا، ما از حال حارسه آگامی داری. حارسه در اثر صحابت تیر ناملومی در رود جنگ بدر به شهادت رسیده بود. هرگاه در جنت صبر پیشگیرم و اگر غیر از این است با شدت ناسبری و گیریه نمایم آن از رت صلی عليه علیه وسلم فرمود ای محارسه او در جنت است و برای پسرت فردوس علا رسیده است. آره برادرم چیگونه باید جنت غمها و مصائب فراموش می شد و آنان را بر تکالیف شکیبا و مشقات صبر می نسائی در, ساید در کتابش از حضرت ابی امیره رضی الله روایت روایت کند که گفت رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود کشته شدن در رای خدا را از این که همه ای اهل شهرها و روستاها تابع و فرمان بردار من باشند بیشتر دوست دارم ترمیزی نسائی و دارمی حضرت ابوریرا روایت میکنن که رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت شهید از کشته شدن جز اندازه آنتی که شما از فشار دو انگشت احساس مینمایید احساس نمینماید ابو داود از عبدالخیر ابن ثابت ابن قیس ابن شماس بن از پدر و جد او روایت می دارد که گفت زنی که اون مخلات نام داشت نقاب زن از پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد علی و پسر خود که در راه خدا شهید شده بود فرسان نمود برخی از صحابه گفتند خود را اینقدر پوشانده ای و آمدی از پسر خود فرسان میکنی و ای گفت اگر پسرم را دست داده ام و قارم را دست نداده ام پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای آن فرمود پاداش و عشد دو شهید برای پسرت است. زن گفت، چرا؟ آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود، چون او را اهل کتاب کشته است. در این حدیث اشاره به وجوب جنگ با اهل کتاب شده، این که هرکی با آنان به جنگت، مزد چند برابر را خداوان برایش می‌دهد. برادرم، چی چیز تو را می شود که خود را از این نعمتهای لایی محروم می کنی و در کنج زلت خمیده ای، آیا اشغال کشورت کافی نیست که تو را تا شمشیرت راز نیام برکشی و به سوی میدان نبرد بشتابی؟ آیا به ذلت و فستی تن میدهی و در زیر چتر نظام فرسوده و مرتد کابل حیات بسر میبری؟ آیا از نقشه ها و دسائس شوم سلیبی ها و سردمداری امریکای مجرم جاهیلی؟ آیا از زندان های بگرام و قندهار بیخبری که در آنجا با ورادران و خواهران چی صورت میگیرد؟ آیا, آیا جهتی به فساد, فساد کشانیدنی قشت جوان ما. ما از, از فایش خانهایی که در شهرها برفا کرده ان ناآگاهی؟ آیا, آیا از این که نساب, نساب تعلیمیت را از بنیاد, بنیاد تغییر, دادن تغییر دادن تا نسل جدید, تا نسل جدید افغانی،, افغانی یک نسل بیپروه و لادین به بار آید در غفلتی؟ آیا از این که نظریات منافی با اساسات اسلام را از بلنگوها و رسانه های خبری، حمد و و غیر در ملت تزریق می نماین بیخبری، اگر از اینها بیخبری، پس باید بدانی که این شمعی از احداث شوم و دشمنان سریبی در افغانستان است. تبدیلی افغانستان به کشور چون ترکیه یا به تعبیر دیگر حاکم ساختن اسلام آمریکایی یعنی اسلام را که آمریکایی ها می بلکه از این بیشتر چنان یکی از مقامات مسئول امریکایی در انگام حمله آمریکا بر افغانستان خاطر نشان ساخت افغانستان را به اسرائیل دوم در منطقه تبدیل می نماییم تاجهت سرکوب جنبشای اسلامی کابل همان نقش تلعبیب را بازی نماید آره کابل، آیا می شود با تلعیب تبدیل شود آره، اگر من و تو با بهانه آی مختلف و با شعارهای رنگارنگ رنگ از جهاد فرار نماییم و ذلت را به سرفرازی ترجیح دهیم پس برادرم برخیز و بار دیگر این سرزمین را با آتش تبدیل نما و همماسین یاکان مومنت را که دیروز اساکری انگلیسی ها در شعرهای ابریشم طارم کردن کردند و جز دکتر برایدن که جراحت برداشته بود همگی به کام مرگ فرو رفتن. آره این حماسه را یک بار دیگر احیا کن و برای اجغالگر تفهیم کن که ما پرندگان بال ای نیستیم که با ذلت کشانی ده و اکنون نوبت را به بخش مصاحبه ها می تف <تصفح> تو شناندگانی عزیز، رادیوی صدای جندولا در این نفته مساحبه را انجام داده با چند برادر مجاهد که اینک پوشورده ای آن به خدمت شما تقدیم میگردد برادری محترم شما خود را معرفی کنید اوض بالله این الشیطان رجیم اسم الله الرحمن الرحیم اسم من خالد است از بلات بلخشان، و لسولی نسای قریه کجدره شما قبلا هم با صفوف مجاهدین خدمت کردید و یا اکنون با صفوف مجاهدین پیوستید ما قبلا دو سال پیش در قندوز هم یک مردو رفته‌بودیم با همین مجاهدین جهاد را برائما فراهم کرد و ای را پیوستینه بود در ولایتی قندز کی زمانی که اولی ما پیوسته بودیم صف مجاهدین الله بود ما شما گفتید ما در مدارس دینی درس خوندم در مدارس دینی افکار طلبا کرام و استادان محترم در مورد جهات چگونه است؟ در مدارس افکار افکار افکار تا جای را می توانیم بگویم نوید درستد انشالله خوب است طالبان را برای راه جهات انشالله دعوت میکنن کم کم اما بعضی استادان متاسیفانه کمی تنبلی و سستی میکنن بعضی استادان فضل خدا که در راه جهاد انسان را تشویق میکنان طلاب کرام را افکارشون ان شاء الله برایشون صاحب میکنن اول الان گزی کی ما را به صف جهاد کشان احادیس و آیات قران کریم بود و Raflat, Big Zaronin mujohidin Darziri, Sangar Hawadar, Maidon Haw, Big Zaronan Motambal, Dara Mujoh Hobkenen, Binobar in Roy Mo Peshukidar Saky Mujohidin Pajvasti. Dara Hirime Shaba Mujohidini Kyrom Chan Nasi Hati Doshta Boshit. Nasi Hati Mobar Roy Mujohidini Kyrom Inanstaky. Avalin raha, ki saadat, vaikka on jäädytöniä, aikirat ovat eri vaiheet. Inshallah, vaihtajan kertaudut, vaikka on raha, istuamattu ja sabrini, janoa tähän, että aikirat on jäädytöniä ja aikirat on alaihi wasallam, eri muodot, muut muut muut muut muut muut muut muut muut muut muut هدف مقصود پایگزاری و تعدابگزاری جهاد بود که بعد از مدت, مدت سیزده سال عقاید و افکار اصحاب کرام صلی اللہ علیه وسلم را خاطری بردارس مشکلات سحینام بودن بعد از آن در مدت ده سال سبب جهاد و مبارزه علیه مشرکین و مرتدین و یهود و دین را در سرتاسر جهان حاکم گردانی دند بنابراین سربالندی و کامیابی و سرفرازی ما وقتی می شود که راه و روش اولین راه بپیمایم و در تعاقب راه آنها برویم و هر افعال کرداری که آنها انجام دادند تبقیق دستورات نبی اکرم صلی الله علیه و سلم و رفتار کردار اصحاب کرامش راه برویم و در این راه ادامه بدهیم انشاءالله کامیابی دنیا و آخرت نصیب ما میگردد از صبر، از تحمل از مشکلات از هم سائب باید خود را Bardaajt, voitko tehdä tämän? Tämä on yksi tärkeimmistä asioista, jota meidän on tehtävä. Tämä on yksi tärkeimmistä asioista, jota meidän on tehtävä. Tämä on yksi tärkeimmistä asioista, jota صوارید هم میست که چه قدر وقت می شو که در صفوف مجاهدین قرار داریم پیش از و بلال شدیم بعد بعد قندوز تعلیمات تقریباً شش ماه پیش در ماه حمل با داخل وزیرستان شدیم و در اینجا تعلیمات نظامی خود را پیش بردیم. میشه در مورد فعالیت های مجاهدین در افغانستان خواستاً در شمال معلومات محتسر دهید؟ در ولایت های شمالی افغانستان الحمدلله برادرای زیاد آمدند در شمالی وزیرستان تعلیمات نظامی خود را گرفتند و الحمدلله از طرف امیرا آنها ترتیب شدند آنها تشکیل شدند طرف شمال فعلا شما خودانم میشنوین که هر روز در ولیتهای پندوس تخار بدخشان عملیات های چریکی صورت میگیرد که از آن جمله چند روز پیش مجاهدی، مجاهدین حرکت اسلامی اوزباکستان چند ارباکی ها را مردار کردن و بعد در همان روز به اثر چاپایی که از طرف یہ خود نصارہ بالای مجاہدین زادہ شده از آن جمله دو از برادران ما یکی خادم صاحب دیگر و برادر ما ہارون به شهادت رسید با کدام یکی از این میشه در مورد اخلاق ایشان معلومات از این دو الله حتی لیکن ما الله بی به عقیده و جذبه اسلامی که داشت هیچ وقت خود به کفر تسلیم نکد در چاپایی که چند روز پیش آمده بود خود را به کفر تسلیم نکرد لیکن در رای الله جل جلاله با عزم و شهامد جنگید و شهید شد حورون رحمه الله دارای اخلاق حمیده و خلق نیکو داشت با همه برادران بسیار بنرمی و بسر اخلاق پیش پیش الله ما و همه برادران خود را با دعوت و الله پایماما برادران مجاهدین این است که همیش از صبر و استقامت و تقوا کار بگیرد از اطاعت امیر از صبر و استقامت کار بگیرد برادران مجاهد توصیه ما این است که ماه مبارک رمضان است برای برادر برادران مجاهدینی که در سنگر هستند و برادرانی که فعلا در زندان‌های کفر هستند برای آنها دعا نمایید و برای فتح و نصرت از الله فتح و نصرت طلب کند خاطر که مجاهیدین تا آخر اندازه در امتحان استند و از الله دعات طلب کند که با مجاهیدین فتح و نصرت کامیابی نصیب کند. وقفتني ديارنا الروم والسلام عليكم ورحمة الله. سيفا تنادي أين وأين الأعادي ما زلت ترهب كسرى والروم والفرس أسرى ما زلت أنت عجيبا لا يا أخي بل غريبا أوى حان القتال وأطرابتنا النبال. والكفر عاد بقوة يريد تضليل أمة يريد مسخ الكتاب من جوفي فكر الشباب سيفي رأيت بكائي أبكي بلون دمائي سيفي رأيت المآسي والناس فيها تقاسي سيفي تفجر وفجر نحو الأعادي وسجر سجر في نار جسم العدو وكابر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 كيف سمعت المنادي اقبل لطرد الاعادي فيها ينادي افغانستان روزی پنشمبه بستن و یه شعبان مطابقه 19 جولای مقامات میگویند در اثر انفجار یک ماین کناری سرک در اروزگان پنج افسر پلیس کشته شدند و گفتهی مقامات محلی موتر حامل اینج پنج نفر بر روزی پنجشنبه در ولسوالی شوراب به ماین کناری سرک تصادم کرده است روز جمعه اول ماه مبارک رمضان مطابق 20 جولای گزارش ها می رسانند که سلسله پرتاب راکت از خاک پاکستان به مناطق سرحدی افغانستان ادامه دارد مقام های ولایت کنر می گویند به خاطر پرتاب راکت از سوی پاکستان به ولسوالی های دانگام، شیگل، مروه، سرکانی و خاص کنر صدها خانواده مجبور به ترک خانه هایشان شدند به اساس گزارش ها از 3 ماه بدین سو از خاک پاکستان به افغانستان راکت پرتاب می شود گفته می شود زیان های جانی و مالی برای باشندگان ولایت کنر و نورستان به بار آورده است روزی شنبه 2 رمضون مطابق 21 جولای گزارش ها می رسانند که در درگیری میان مجاهدین و مرتدین داخلی در ولسوالی گزراه ولایت هرات مدیر استخبارات این ولسوالی و یک سرباز کشته و قمندان امنیه ولسوالی گزراه با یک سرباز دیگر زخمی شدند در این جنگ از شهادت یک تن از مجاهدین نیز خبر داده شده است گفته شده است که این حادیثه زمانی به وقوع پیوسته است که مجاهدین به شرکت سنگ مرمر حجوم بردن. این حادیثه در شهرک صنعتی در نزدیکی میدان هوایی هرات رخ داده است. با گفته مرتدین چهار فرد ملکی در ولسوار خوگیانی ولایت ننگرهار کشته شدن. سید رحمان ولسوار خوگیانی در یک رسانه کفری گفته است که این افراد هنگامی جان باختن که موتر حاملیانان به یک ماین کنار سرک برخود کرد. یک عملیات مستقلانه نیروهای مرتدی افغان در ولایت لنگر منجر به کشته شدن یک غیر نظامی و زخمی شدن سه نفر دیگر شد گفته شده است که اکثر قربانیان کودکان بودند نا وقتی روز شنبه ولایت کنر یک بار دیگر موارد حملات راکتی از خاک پاکستان قرار گرفت که در نتیجه این رویداد چارتن تن کشته شدند سخنگوی والی کنر گفته است در روز شنبه حدود 300 راکت بالای دو ولسوالی این ولایت پرتاب شد روزی یک شنبه سه ای رمضان 22 جولای مقامات محلی میدان وردک میگویند افراد مسلح ناشناس پنج تن را در جل ریز این ولایت و قتل رسانده‌اند گفته شده است که این پنج تن در پایگاه نیروهای خارجی کار می‌کردند ناتو میگوید که سه سرباز آن پیمان در اثر حملات مجاهدین در شرق افغانستان کشته شدند گفته شده است که دو سرباز روز یک شنبه در اثر انفجار یک بمب کنار جاده کشته شد در حالی که سرباز سیوم در اثر یک حمله جداگانه بروز روز شنبه کشته شده بود یک هلیکوپتر نیروهای اردوی ملی در ولسوالیه کامدش ولایت نورستان سقوط نموده است اشان این خبر را تایید نموده میگویند که در این رویداد یک پیلوت خارجی جراحت برداشته است اما زبیح الله مجاهد مسئولیت این حمله را به عهده گرفته میگوید که این هلیکوپتر توسط آنان سقوط داده شده در اثر آن هجده تن از عساکر اردو ملی کشته شدند سه تن از مشاورین ملکی خارجی روز یک شنبه توسط یک منسوب پلیس افغان در مرکز تربیوی پلیس هرات کشته شدند گمان می‌رود که دو نفر از این مشاورین آمریکایی و یک تن آنان بریتانیایی باشد در ها گفته شده است که فرد مهاجم بر مشاورین خارجی یک نیم سال پیش از مرکز آموزشی پلیس آن ویلاयत فارغ شده و در قطع محافظت قرارگاه توزیع شده بود. به گفته آنان این فرد در اثر گلوله‌باری متقابل اسفاده در آمد. گفته شده است که در این رویداد یک مشاور دیگر خارجی و یک ترجمان افغان نیز زخمی شده است. روز دوشنبه 4 رمضان مطابق 23 جولای گزارش‌ها ها که قرار بود و عساکر خارجی در اواخر این سال افغانستان را ترک کنند. نصف آنان روز دوشنبه افغانستان را ترک گفته است. بارک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده سال گذشته فرمان داد که تا پایان سبتمبر سال 2012 میلادی هزار عساکر امریکایی از افغانستان خارج شوند. در نتیجه انفجاری یک بمب کنار در ولسوالی قلیزال ولایت کندوز یک فرمانده پلیس محلی با دو تن از محافظینش به هلاکت رسید پلیس در ولایت پروان میگوید تحقیقات به هدف شناسایی عاملان قتل سه انجینیر ادامه دارد گفته شده است که دو انجینیر افغان و یک انجینیر آمریکایی که در بخش تولید انرژی برق کار میکرد روز دوشنبه در مسیر شهرهای قربند و بامیان در نزدیکی ولسوالی سیاه‌گرد ولایت پروان کشته شدند گفته شده است که افراد مسلح ناشناس بر موتر حامل این انجینران تیراندازی کرده آنها را کشتند. مقامها در ولایت فرا میگویند قمنداران یک پست امنیتی در واروسوری بلا بلوک این ولایت روز دوشنبه هفتن از همکارانش را مسموم ساخت. گفته شده است که این قمنداران میرویس نام دارد همراه با 13 پلیسی دیگر لا درک شده است. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان گفته است که این قمنداران و افرادش به مجاهدین پیوسته اند. روزی سی شنبه پنجی رمزان مطابقی 24 جولای، آیصاف روزی سی شنبه از کشته شدن یک سربازشان در نتیجه عملیات مجاهدین در شرق افغانستان خبر داده است، در اعلامیت در مورد محل دقیق و هویت این سرباز چیزی گفته نشده است. با تاریخ مذکر مقام های زابل پیوستنی دو عزوی شورای صلح آن را به صفحه مجاهدین رد کردند. رسانه های محلی افغانستان از پیوستنی مولی محمد یوسف و مولی زیبا دو عزوی دفتر ولایتی شورای صلح در ولیت زابل و مجاهدین خبر داده بودند. روزی چهارشنبه شش رمضان مطابقی 25 جولای گزارش ها می رسانند که روز چهارشنبه در نتیجه انفجاری یک ماین در ورسوالی چهار دره ویلایات کندز چهار پولیسی محلی کشته شدند گزارش ها می رسانند که حدود 20 از محافظین یک قرارگاه نیروهای آیساف در ولایت ورزگان به مجاهدین پیوستند گفته شده است که این افراد بعد از اینکه در یک تنش لفظی به نیروهای آیساف خشنگ بین شدند فصله های خود را به آتش کشیده به مجاهدین پیوستند روزی پنشنبه هفته رمزان مطابقه 26 جولای در نتیجه یک انفجار در پیش روی قماندانی ویلایتی ولایت بلخ یک پلیس کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند که این حادثه بعد از ظهری دیروز رخ داد. گفته شده که در بین مجروحین سرپرست قماندانی امنیتی بلخ و آمیرین حوزه های نهم و چهارومی شهری مزار شریف نیز شاملند. مقامات پاکستانی میگویند که در سه حادثه روز شنبه حداقل هجده کشته و نزدیک بسیطان دیگر زخمی شدن. مردانی مسلح بر یک پستی تلاشی در ایالت بلوچستان حمله کرده. حداقل شش سرباز پاکستانی را بازدار بگرولا کشتن. با گفته مقامات پاکستانی حمله کنندگان سه سرباز دیگر را زخمی ساختند. در یک حادثه دیگری که در منطقه قبایلی اورگزای رخداد نو کشته، بیست زخمی بر جا گذاشت. اداره صحت سازمان ملل متحد میگوید. که روزی دوشنبه یک کارمندی ایشان در شهر کراچی بازار به گلوله کشته شد. مردان مسلح روزی شنبه در شمال غرب پاکستان بالای کاروان اکمالاتی نیروهای ناتو مستخر در افغانستان حمله کردند. مقامات میگن که در حمله که روزی شنبه در بیرون جمرود در منطقه قبائلی خیبر صورت گرفت یک راننده کشته و یک تنی دیگر زخم شدند. انفجار یک بم بر یک بازار مزدخیم در شمال غری پاکستان روزی پنجشنبه در نزدیکی سرحد افغانستان منجر به هلاکت حد اقل هفت نفر گردید گفته شده است که انفجار در منطقه قبیلی با جوور رخ داد که بهش از 100 نفر دیگر را مجروح ساخت که وضعیت برخی از آنها وخیم است همچنین این انفجار چندین موتر و دکان را تخریب کرده و کارمندان نجات مخربها را جستجو میکردند تا افراد گیرمانده را پیدا کنند سوریه گزارش ها می که مجاهدین در سوریه شماری از دروازه های سرحدی این کشور به عراق و ترکیه را به کنترول خود دار آوردند. آنها بالای چندین پوسته سرحدی حمله کرده، حداقل یک دروازه عمده سرحدی در منطقه ابوکمال کمال پس از کشتن بسیار سرباز دولتی تصرف کردند. از آغاز قیام ضد رژیم در سوریه روزی پنجشنبه و جمعه یکی از خونبارترین روزها در سوریه بود، خالین می در جریان این دو روز چارصد افتادتن به شمول سربازان، مجاهدین، مخالفین بشار لسط و افراد ملکی در سراسر سر سوریه کشته شدن. گزارش همجران حاکیی است که در جریان 48 ساعت در روزی پنجشنبه و جمعه بیش از سی هزار سوریه وارد لبنان شده باشند. قوای نظامی سوریه روز شنبه برای دومین روز در شهر هلب در گیری جنگ با مخالفین حکومت بودند. شدت مقابله سبب شده است تا مردم خانه های خود را رها کرده و به جاهای امن پناه ببرند. هلب که مرکز تجارتی و پرنفسترین شهر سوریه است تا کنون عمدتن به بشار اسد وفادار باقی مانده است. فعالین سوری میگویند که مخالفین حکومت در تلاشند که پس از هفته ها در گیری در کنند. همچنین گفته شده است که در نتیجه درگیری ها روز شنبه در سراسر سر سوریه حداقل 130 نفر کشته شدند. اردوی سوریه شب یکشنبه با استفاده از موترهای زیرپوش بالای مخالفین رژیم سوریه در منطقه امپوی شهر حمله کردند. به اساس گزارش ها هنگامی که نیروهای دولتی وارد محل صلاح در منطقه علیپو شدند صدها خانواده محل ریهایش را ترک کردند. الیپو برای دو روز تحت کنترل مخالفین قرار داشت بعد از کشته شدن چند مقام ارشدی امنیتی سوریه به شمول وزیر دفاع و داخلی آن کشور 500 نفر در جیران خشونت ها در نقاط مختلف آن کشور کشته شدند عراق به ستسانا فروزی یک شنبه در اثر بمب جاسازی شده در یک موتر در شهر نرج زخمی شدند این انفجار در 700 میتری زیارت امام علی رخ داد گفته شده است که وضعیت 4 تن از زخمی شدگان وخیم است مقامات عراق میگویند که روز دوشنبه موجی از بمبگذاری و گلوله‌بارانی‌ها در 15 شهر این کشور جان کم از 106 کم نفر را گرفت و بهش از 200 نفر دیگر را زخمی ساخت. مقامات گفتند که در یک مورد از این خشونت‌ها، افرادی مسلح بر یک پایگاه نظامی در شمال شرق عراق یورش بردند و 15 سرباز عراقی را از بین بردند. سلسله ای از این انفجارات، شهر‌های کرپوک بغداد و تاجی را بلزه در آورده و جان دهها نفر را گرفت. آمریکا، رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا بارک اوباما میگوید از تیراندازی دسته‌جمعی در یک سینما در ایالت کلرادو سخت تکان خورده غمگین است در این تیراندازی اوایل صبح روز جمعه 12 تن کشته 58 تن دیگر زخمی شدند به اساس گزارش‌ها تیراندازی به وسیله یک مرد قابوش در مراسم افتتاح نمایش فیلم سینمایی صورت گرفت گفته شده است که این حمله یکی از خونین ترین حملات در تاریخ مدرن آمریکاست پلیس آمریکا, امریکا میگوید که حمله کننده به خود چاقو، تو تفنگ و تفنگچه داشت و واسکت ضد مرمی هم پوشیده بود یک سخنگوی اردو آمریکا میگوید یک جت اف 16 آمریکایی روز یک در اقیانوسی آرام در نزدیک سواحل ژاپن سقوط کرده است چین روزی شنبه حد اقل ده نفر در اثر بارش‌های های شدید در پیکنگ مرکز چین کشته شدن. بر اساس گزارش ها سیلابه ها به روزی شنبه شهر پیکنگ را متاثر ساخت که این بارش‌ها ها شدیدترین در دران کشور ظرف ششده بوده است که این بارش‌ها ها چهارده ساعت پیهم باریده است. بر اساس گزارش ها در اثر بارش‌های های شدید در مناطق دیگر چین ده تن دیگر جان داده است. سودان روز شنبه قواهی نظامی سودان جنوبی میگویند که تییاه های صدانانی یا را در سودان جنوبی بمبارد کرده است این رویداد دو هفته پیش از ضرب عجلی میل متحد برای مذاکرات سال و حل موضوع نفت بین دو کشور با وق میپیونندد سخنگوی اردی سودان جنوبی روز شنبه گفت کهتییاه های سودان قری را در روالات بهره غزل بمبد کرد کهدار آن دو غیر نظامی جراحت سطحي برداشتند تاجيكستان، استستال، از تاجيكستان می رسانند. یک مخالف سیاسی حکومت این کشور و یک مقام دولتی روز شنبه کشته شد گفته شده است که جنرال عبدالله نظروف رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان در ولایت بدشان پس از چشhti روز شنبه بازاربات چاقو و قتل رسید روز سی شمبه مقاما در تاجکستان میگن در نتیجه عملیات خاصی روزی سی شنبه در شرق این کشور نوتن از ساکیر دولتی کشته و 25 دیگر جراحت برداشتند. این عملیات به هدف سرکوبی یک گروه مزنون که گفته میشود در قتل یک مامور کمیته دولتی برای امنیت داخلی تاجکستان دست داشته صورت گرفته است. هند قوای امنیتی هند چهار مظاهر را روزی سی شمبه در ایالت آسان. در حالی بازار به گلوله به قتل رساندن که مقامات تلاش دارند درگیری‌های نجادی را به کنترل بیاورند که 26 نفر را تا کنون کرده است شোনামندان عزیز این بود داشته های برنامه امروزی تا برنامه دیگر خداوند منان یارو و یاورتان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته <متصف> وأطلب مسمعي سرّ صار الشاش أبي أنضي بين شادة لا تخشّاه تنشقي وأنضي.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 ينا جمع النصارى الحاقدين اطرب مسمعي في رصص الرشاش ابي زمجر مسمعي في رصص الرشاش ابي زمجر واطرب مسمعي في رصص الرشاش وأطلب مسمعي في الشاش الشادي متى كان لا تفرح فقد جئنا بجيش احمدي يكون للموت كما تهفو لشرب الخمرتي متى كان لا تفرح فقد جئنا بجيش احمدي يكون للموت كما تهفو لشرب الخمرتي آه لنيل شهادة في ساح اقصا الأبي آه لنيل شهادة في ساح أقصان الأبي زمجد وأطلب ما اسمعي زر الشاش أبي زمجد وأطلب مسمعيزرصاص الشاش أبي زمجل و أطلب مسمعيزرصاص رشاش أبي زمجل وأطلب أطلب مسمعيزرصاص رشاش أبي زمجل و أطلب مسمعيزرصاص رشاش أبي زمجل و أطلب مسمعيزرصاص الشاش أبي أنضي لنيل شهادة لا تخش قاعو تنشقي وامضي لنيل شهادة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 واطرب ما سمعي ترنص سر الشاش الابي زمجر واطرب ما سمعي ترنص سر الشاش الابي زمجر أطلب مسمعي برصاصر الشاش الأبي فتكان لا تفرح فقط جئنا بجيش أحمدي يكون للموت كما تهفو لشرب الخمرة فتكان لا تفرح فقط جئنا بجيش احمدي يكون للموت كما تهفو لشرب الخمرة آهل لنيل شهادة في ساح أقصان الأبي آهل لنيل شهادة في ساح اقصان الأبي مسمعي رصاص الرشاش ابي زمجر واطلب مسمعي رصاص رشاش أبي زمجر, زمجر واطلب مسمعي رصاص الرشاش ابي زمجر رثا الظمبا